بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلا الله علیه و سلم رسول الله و آله الطیبین آفرینم بعد بحث کنید به سه بود گفتیم یه مقدار قدمای اصحاب از کلی من به اولیه تفاصل اصحاب را جلب سعی اقتداعا خلاف شیخ توسیست که ایشون متعرض شدن دیود عبارش و چون متعرضه بست حد پسل رو خوشش شدن این چون خودش قبول نکر آیا قساس میشه که با سه کسی رو به خوشی ها قساس نمیشه راجع به این وقت کردن و خب چون گیشون واضحه شدن مبارنگ شدند و ما هم باید کلمات احضی سنت در این مسئله عرض بکنیم بیدیم حالا مناسب اینه که همینجا کلمات احرسانتی دیدیم به همین مقداری که به اصطلاح مناسباً حلش رو یه تخصیل زیاد در کلماتشون ندیم یه روز دو کتا کلمات احرسانت رو کنیم ارز کنم که منطور در کسانی که راجع به صحر در بابو قدود و این هم خوب نوشته ابن هزم در محلان در این شاطه ای که معروفتر اولا به نظر من نیم یازده جدی جلده جلد آخر جلد 11 یازده هم اما هم با حدود به این جلد جلده یازده هم سخه یه چون یه چاپ جدیدی شده دوازده جدی من ندارم خواهاتم باز که جلده دوازده هم اونجا باشه و هر حال اون چی که ایل از حالا مواحظه ایل می کناش می خواهم یک مقایثه هم بشه چون تقییبا ادنه هرز متعقی چارسد 40, 60, یعنی این دوتا معاثر هست مرموشه تو توسی با در حضم زادری یکی در بغدا از یکی در همدرست اون وقته بوده که همدرست دهت با ما حکومت اسلام دولت بنی اومعی در که بوده بنی بعد از این که بنی حباس میکنن در سال سال سی میرم به همدرست و خلافت با اسلامی همدرست مال اومعی بوده درست کردم مثلا سال رایی دیگه ما سه تا خلافت داشتیم انباسی ها در بردان شیعه های اسمایی ها در مصر خلافت فاطمی و اوموی ها در اندلس. و ابن هست تونگیت تو ذهن من اگر حواصم فرامیش نشده باشه در نصب نسبم اومویه خودش هست بنی اومویه هست نصبش نصبه به بنی اومویه برمیگرد خب توندم هست میگه ایساقه هم علاقه ابن هست فقط زده شیه می زده همه بادن الحمدلله فقط از مذهب خودش دفاع میکنی حمله همه همه میکنی علایه حالتیشون در اینجا متعرض وقت سه می شده مقارنه کاریشان که در اندرست بود اون سر دنیای اسلام با مرگون شیخ که در بغداد بوده در مرکز دنیای اسلام که هر دان فقه مقارن نویشتن انصافن لخیفه مواحظه که دیروز از شیخ خون و هم مقارنه بکنیم با کارمی که علمای نه سنه راجب همون مثلا انجام دادید ایشون میگه اختلاف اناس سر فقال طارفتون یکتر و ساهر ولا یستتا و خبه قول و مالک و قال ابو همیشه یکتر و ساهر هم در اینجا و در کتابی که ما خوندیم از کتاب زیدیه تا نخوندیم سابقا تو برش حدیث خوندیم اما اما این که ابو حنیفه میگه یختل و صاحب این بینه محن کتاب مصند زیده نست کردیم در میان اهل سنت از ابو حنیفه با عنوان فقیه کوفه و از کوفه با عنوان این که مکتب عبدالله عبدالله مسعود و عمیر المومنی وقت در این کتاب مصند زیدم زیده, زیده نعریه عبیه, هن عبیه هن عمیر المومن قال حد دو صاحب قدید تأثیر این روایت زید رو و خود ابو حمیق زید تقریبا هم عمره و امام سادر تصدفه گفته شده هر سه مطرده هشت دادن این دیگه هم گفته شده اما گفته شده که هر سه مطرده هشت دادن از شافی و اصحابان را از اصحابان ظاهری ها اصحاب داود ابن علی اسوانی امکان کلام ولدی از حباب کفرند پس صاحب ها مالت هدون و ببینید اونجا دیوز نهبه کردیم از مالک زندی قرم زندی خیلی از بوده که توضیحاتش بوده شد. و اینکان لیس کافرن فلا یقتلن نهو لیس کافرن بعد این به اجمال پتابا بعد میان از ذکر ان المتقدمین فیداله که اشیا اومد نقل میکنه یکی حدیث اول ایشون سران را حدیث از زمان خودش آورده من شاختی با علمای ادلس آشنا نیستم کتابای در شرح در مسترنا آشنایی ندارم خیلی آشنایی حتی ضبط درسش هم نمی‌دونم که اینا چی ان در بودن طرفره بودن زبان چون وارد نیستن ازش میکنیم می‌کنیم تا امر بن دینار ان قال ان عمر خطاب خطاب كتب الى جزیع ابن معاويه چند تا از صحابه داریم حالا مشکوک زمان درس بعدها کم داریم مورد اگر سرشیم اسمشون در درانستان ها روزن جوزه جوزه ابن فلان و بعضی ها هم داریم مسقر جوزه جوزهی این جوزهی ابن امتصال هر دو اسم از گفته شده هم جوزهی گفته شده هم جوزه جوزه ابن ماریه این از رایسای اشائر بوده در اطلاق بصره معروف بوده و بسره چون شیع. ایرانی هم توی زیاد بودن نزدیک ایران بوده خیلی چیزهایی از عمر نرسده که تنگیه خاصی داشته بله این جزه ابن معایه هموی احمد بن قیز احمد احمد احمد ایسیه معروف شخصیه خود بقید را هموی روز و رئیس اونجا بوده انه اختر کل صاحب و به این کاتب نوشته در زن کرده و به جاله کاتب و جز بله یا به بجال کاتب لازم حال بجال به هر حال جناب آقای عامل عمر بر دفتر یک ملا بنیس و اول امونیشی به اون نوشته که بله و کاتب نام فرستادیم فوجد نا ثلاث صاحه سه تا زن صاحه البته خوب دقت میکنیم احتمالاً در اینجا ها اون مبدا الاشتباه رو در نظر گرفت یعنی به نظر من میاد که یک میقداری بحسترتون دری نبوده سااهیر یخت یتر یعنی کسی که یک ص بکنه یا سااهر یختر کسی که بها کارش باشه. این خیلی مسئله است. یعنی کسی با چ مثلا زندگیش و کارش ها عبارت سرو کردنه و وجه سواهر است هست تو در سااحده دیدیم تا ز ماهنان نحوه لا نوشتهره به گردن زدن. به نحن شمشید تا ما ارناقه این یک ربایت و بیهی ایلا عبدالعبان صدقی خودش داره باز قال قاتل صاحب سر این بزرگان عشیر خودش سر سر معروف که در جریان چیز در جریان بوده بین اونو بکنه کرد و این جزء بزرگان امیر و اشکر امین و بود خیلی آدم که قرارده بوده به را و ان نافع ان ابن عمر ذرکتا به احلستان رایت ابن عمر خیلی زیاده و راویش خوب اشتباه قطعا نیده مفیده برای یا نافعه یا سالمه اینجا نفر زیاد از عبدالله و نامر میکنن تو موت و بردستان خیلی زیاده حتی مالک داره ان نافع ان ابن هم داره. بزیاد علمای اهل سنت اعتقادشون اینه که این سندی تا این اسناد پیش اهل سنت اینه نافع بن نمر رسول الله این نافع علام عبد الله عمره اشتباه نشه این دو تا با هم دیگه با اشتباه میشن سال پسر عبد الله این دو نفر راویه جایی بسیار مهم از آثار عبد الله بن عمرن حتی نافع نزد زهرا داره که امام باقر با او مناقشه فرمایده که بودن توی این مکرب دروغ رفتی توی میگه عبدالله نامر اینجور گفت دروغ بودی کده علایه حاله نافع خیلی عنوان داره بین و این عبدالله و نهر ای این قرام عبدالله امره اینجا که داره اننافع چون داره که اننافع ان ابن امر ان جاری از ان لحف سه یک کمیزی داشت سهرت سهرات ها طرفت به داله اعتراف کرده من در حدا فامرده ها عبدالرحمن بن زيد که یک کتاب دیگ هم خونده نشه من گفتم نسخه ای هم داره نه همش عبدالرحمن بن زید کسی دیگه ذکر شده غیر از عبدالرحمن بن زید و ایمان و سعد عبدالرحمن بن زید عبدالرحمن بن زید به اصطلاح که سردراده عمره یعنی کسارانو یا حفصه عبدالرحمن بن زید در خطاب اون عمر بن خطاب زید برادر عمره به عمر یک پسر هم به نام زید نستاده از اما کلسون دختر از از این ما هم از به نظر ما اصلا عمر کلسون موقعومه وجود واقعی نه همین پسرش به موقعوم پسر هم جود علا آیا حالیم یک زهید ابن عمر داریم یک زهید ابن خطاب داریم برادر عمر این پسر برادر عمر عبدالرحمن ابن زهید فقط خلها این معنیش این هفتر میسه پدر عمر شدیز و بعد که علی عثمان عثمان گفت یعنی چی این بدبختا کشیم فقال له ابن عمر حالا ابن عمر که به قولشون خریع احساسی بود که مطلبی بر رسولان حرم کنه قال یعنی ما تون که راه ال امر مؤمنین و مؤمنین بیا فرموده سینا بحثه امراتون سهرت و اثرت فسا که عثمان نه عثمان دید که این مرضی چیزی سرش میاد که فایده تو این سکوت آمد که حالا علامات باشه به شما فهمید که این خودش دانش از خطر ممکنه خود خیلی دیگه امونمونی کنند و اینه ایوب سختیانی از علمان بزرگشون هم ناطق اینه هفته سهر هست فهم رفت او بیدالله اخا از کلم تیسیه شده من اشتباه کردم. هم دو رحمان ذهب شده اما یکی دیگه هم ذهب شده او بیدالله فقط ساخرته حالا یکی بوده چون خود او بیدالله از کلم مرد شروری بود پسر اومد مردش به خلاف عبدالله یا اهل بود این فرد فرد شروعی بود این همون بود که قرموزان رو کشت بعد از فرسه ابو لولوه شون ابو لولوهی که خودش خود کشی کرد نتونستن رو بعد از زربه دادن با اومد پترون مانند روش انداختن که تکان نخب بگیرنش زرش چکم خودش رو پاری کرد ابو لولوه کسی نکشن وقتی این عبدالله شمشین یه او دوستی زن ایرانی رو هورموزان که, که, که, که هم دختر از خودنی قبول او که اسمه بود مرو زییم اونا رو ک که انگیر روی ماام که من اگیر از شدهفین میکشند به خاطری که هر ازقابل الله او مذا بکش بعدا مورد هفت بعد تا برای اون بهر شد مالح به معوی رفت به شام در سفین جزه پر چنددارهای ماوی بود آبله معمد در همون جا هم کشته شد در به عمل ازقابل الله تخواه ها تتل و الاطافه نخاد المخزومی از صفوان قال رایت سالم این سالم پسر عبدالله نامنده از این دو نفر در کتب اهل صحبت خیلی از عبدالله تعریف میکنن یکی پسرشه یکی غلامشه اشتباه نشه اون نافع غلامشه سالم پسر عبدالله نبی عمر میشه رایت صالحا عبدالله و او واقعا الا جدار بیت من ذبی ذبری اهل له بچه های برادرش که بودن اطاق و قلمت قلمت و چارتا جوان و محهم و غلام و خوب عشق کنه خیلی به اطلاع به قول تارسی مور بدن بوری داشته بدن سفیده یکی لطیفی میده بعد اونا تقال یا ابا هم یا ابا آمد اون نیمه یا ابا هم بودی ابا هم بودی اون درمایی مایت آقا آدم اون جوانه به اساس این احتمال داره که از همون زمان‌ها هم این تقسیم‌بندی اثر شروع شده. حوا دقت بکنید. مایه شناور. قالوا مضا یتنا این چیکار می‌کنه؟ قال تسل خیفن نسوبیه. یک نخ رو از لباسش کشید. از که پنج دفعه اشک کرد. اون نخ رو پنج‌بره، لابلای انگشتاش گذاشت، کشید، پیشون نخ کامل در بود باز پنج بار دیگه اون شد. با این معلومه پنج 5نج به ساعت میکن دی تو آسانش میذاره اون آاصل در میید این دیگه واضحه فصل خیلیط منصح بگی فقط ت او و سالانیی هم گله به سر سرقمر نگاه میکرد فرجمعدید که دیگهیش کرد پگه می پنج هم باکن توه. فرجمع او بین اسبین من صابگی بین, بین درسش انگشت که چپون گفت اوقل ما ارجی مجی کرد صبحمت چپ استاد تفهم کرد که مثل مثلا کس میشوند بشاس میزنند. او اوضارات هم. سوم مرده و کشیده استفاده میکنیم. پنج مردی یکی کشید. بعضی ازشون نکه. بازه که چندی که از این دفتر چندی که. فعلا هوشیاریم لیت بیهی دستور. دوستان شد. این یک نمونه است. یعنی تصور بفرمایید کی نه سه چی میدونستن دونستن؟ فرض تو سال من یهود اذا میالصاله پسر عمر میگه لوکان بیمنره همون شیخوان در طلب بود اینا اصلا دار میزدن به قرن چوری یه تصور ذهنی رو یه نخی رو پنج قسمت کرده یا چهار قسمت کردی لایه انگشتار یکم مصروادی خوب داده به قول خودی که بیچاره بود مصروادی ما دیدم شوخی واسه نشه دیگه نگاه درست ها این چیز فنی ان خیلی خیلی مفزده این گفته دکمان علی در انگشی اون در طلب بود حلائه. مثل این روح عمری در ایمان شبه آدم کشی برد نمال عدنا بودن که افاده بکشن و ان یحیبن سهی برای انصاری ان از هفته سهر زنی هم اون سهره و ان یحیبن عدی کسی قال اینو قلمان در بن عمر بن از سهر برای عمر مثل تربان و قلوسون راشد چیز خاصی انصافه خب واقعا هم انسان دو بالل بود یعنی بنا لنگوسالی کششون مدت کمیه دو سال عمرش نیست انصافا مجموعه کارهای بسیار تنگی رو در این دو سالشون انجام داده میگن مثلا نوشتن که خب خوارزمی زمد هنر مهمی می‌چینیان با اینمون که شروع کنه جنگ رو بعد با بعدیا اومد یه کاری کردن واسه فنیشه خب تو بی خود با بیو نگاه کن زندگی, اما زندگی, اما زندگی اما ما زندگی همونیه که شما خلفای راشن میگی تو نامرا رو به قبول ندارن گفت که ما حب شيخنا ابو عبد الله خير الله ان شاء الله خوار نام با يعني اون رئیس خوار پنچ شیش ماه توی شام پیش اون نه زندگیش خیلی ساده نه تونس. اون رئیس خوار جانو عمرش هم چیزی شده با دولت تمیده دید نه و این جناب عمر بن عبد العزیز نمي تونست کاری تا مدتی که شام پیش او بود قیام مصالحان علیهش نداشت لعمر بن عبد العزیز اخر صاحرتاً کلامش فعلقا فلم فخا فخا تا وقت عربی بالا اومدن وقتی که ماهی مثلا می‌گیریم بالا آب اینا تفسنه یعنی هیچ‌کیش باک کرده نیست این زندگی آمد روی آب یعنی بو حرکت حبیله بهو ما رب نعطال عزیز ان الله لم يامركن تلقوا في خدا که نگفته که به ای نه این برفرضون میگه قصه باشه با همون شمشیر و همون آب فعلا ها این از سنت عمر بن و همه ابن شهاد. این ابن شهار معروف است به زهری محمد ابن مسلم زهری خیلی معروفه خیلی عمال بنی امیه بوده باید توبه میکنه مثل که خون ناحتی میریزه و از خیلی بزرگان میشه یکی از مخلصین از سجاد هم هستیشون در همین کتاب سعی بخاری زهری هم علی عبدالحسین داره خیلی از خیلی به اصطلاح به دنبال حضرت سجاد سمان الله علیه بوده در بین علمای اهل سنت خیلی شهرت داره واقعا یکی از بزرگان حدیث در بخش حدیث هم انصافا خیلی زحمت کشیده حالا واسه وارد بخشش میشم داشنجور هست من یه مقداری که عرض کردم نه بخاطر عجیب اینه که اون عبارت کتاب شبونی همین فتوای زهریه اینه شما چون من عرض کردم کراراً مواردی رو دیدیم در کتاب شبونی در که برمیگردیم مال یکی از علمای قبل اصلا اینجا همین عبارت زهری رو ما در روایت سکونی داریم قال یکتر صاحبه مسلمی اولا یکتر صاحبه از این کتاب بردار لعن من نبیه سهره و رجم ندیه بود یو ابن عصم من را من خیبر یو قاله زینب تلم یک ما عجیب یک توی کابل سکونی و جعفریات همین آمده خیلی حقیقی خب طبعا احتمال دار شد در و همین شده جعفری یکی از اجاریت اینه که عین عبارتسی بود که در کتاب جهفراتنی و مهمیتصا و از سکونی نرو کرده سونابت زیششون نعمل نکرده جعفریات کامل آمده و در کتاب دا از این کاملتر آمده که حالالا بعدا باثر میخیم که از اجارب اینه که این عین این فوا در کتاب سکونی جهتر نبی آوا علی نامده قال ابو محمد باقالشون که خود همان ابن می باشه دستش در که اینها قابل بودن به ترتیب بود. به قتل صاحب حاضر یه و اما من خالد هاذا کسانی که خب خوب خوب دقت کردیم خیلی لطیف بود اضافه اگر خیلی مبارسه بکنیم با, با کاری که بره شیخ دیروز نگفتیم خب خیلی کارش لطیفه صاحب قابل قیاس بود صح کرد با این در بغداد بود در مرکز دنیای اسلام بود خیلی عجیبه و این مصادر همه در اختیار شیخ بود اصدر نه. ببینید من از معاصر بدر که مخصوصاً ببینید نحله احاطه ای که ابن به و اینکه در اندولو و راه بون دوری و خیلی عجیب به انصافاً جایگاه ابن حزم در احاطهش واقعاً فوق العاده است تمام اون مواردی رو که ایشون تونسته جمع بکنه که قتل ساحر بوده و اما مخالف ف ایشون میگه از بله ان عائشه ام آن عمر بن عبد الرحمن این امر بن عبد الرحمن لحاشانون باذن از این تاریخ رو کن ما یک ابو بكر محمد بن عب... عمر بن ابو بكر محمد بن عمر بن هزل امکه محمد بن عمر بن که بین اهل سنت بین ما هم ازش هست که فابی نام کرد من کل مناسبه دیل از کدوم پیغمبر ایشونو به یمن تو رسن کتابی بیشون دادن این کتاب بعد که از مصادر سنن پیغمبر شد سری از مسادری که علما به وقتی من این اخیرا توضیح زدن بنا شد سنن پیغمبر جمع آوری بکنن از دادن اولین کسی که رساله همه عمر بن عبدالعزیز وقت این سنن پیغمبر در مدینه چجوری جمع آوری کردن یکیش کتاب ابن ابي حمزه حذمه ابو بکر نه، هر سالان در این کتاب سوندنش یک مرحله دارد کتاب کنسرت آملاوز در متن کتاب سنن این جزءی از این کتبی است که سوند رسول الله درش نشده. ایشون یک دختر امویی داره همین. ابن حذّ نظم انصاری به نام عمره بنت عبدالله رحمان ابن حزم من Ansariه عمره عمره. این هم دختر همویه نمیدونم حالا این هم داره سننی از پیمانبر دار الان تو ذهن میشونم الان این که میدنسیان دیگه کردن همون کتاب که سرعموش یا نسخه دیگریه این زن با این خانم بوده کتابی داشته با عنوان سنن پیمانبر که در کتب اهل سنت هم داره که وقتی عمر بن عبدالعزید فرستاد به من دینه منجور و اونزرو سنن امره این سنن احری رو بعضی از سنن عمر نمیشن نه این امر از عمر نیست عمر سنن نداشته اونی که امر رسول الله سنن داره این امر است امره بنت عبد الرحمن دهل انصاریه علاوه بر اینجا امره نه می‌کنه ان عایشه عمر مؤمن اعتقد جاریه صندوق انجبره یک جاریه رو با اینکه تدوین کرده گفتن انتن خوراتون بعد حیاتی بعد وفاتی اون دو فروختش و انها سهرت ها چون این جاریه سهر انجام ببینم خب بگم در همون زمان رسول الله این عرض در همون زمان صحابه علی عریض این که چهار تا نخ بگیره بعد به بگه وصلش بکنه این گفت سهر اینی که کنیز عایشه یه چیزی انجام بده که عایشه بمیره خب رو بود بمیره چون برای مری بوده این سهرت ها یعنی چی چیزی... انجام بده که عایشه چرا چون داره بعدش هم داره حتی اگه خیلی ما کاری کردی؟ مثلا من توی گفتم بعد از من آقا من می‌خواستم تو زودتر بمیرین که من آزاد بشم می‌گفتم دارم نیست بعدش من که آزاد بشم من گفتم یه کاری انجام دادم که زودتر بمیری که من زودتر آزاد بشم پس ببینید دقت کنید چی شد موجب میشه من چی؟ یعنی در یک زمان عایشه می‌گیریم با صالح پسر عمر عبدالله بن عمر اون چهار تا نخله وسط بغوش یک بود کرده گفته این سهر این بکشین این می‌خوسته عایشه بکوشه واسه. معلوم میشه سه اون تو که من عرض یه عرض عزیزی داره. یه چیزی که حالا مثلا دید. این قتل کجا اون مسئله چادر نخ برعکس کجا میشه. بله. و نهات ها و طرفت و قال احمد طل عث می‌خوام آزاد بشن. تو ببینی از زودتر آزاد بشن. فهم از ها عایشه عایشه هم خب حالا که این سو استفاده کلمه انقلاپش مهروالی کردم مخسر کنه به رو میگه روزش به این یابونی ها با بادیانش اینا بیاونی ها از اونایی که پل این بردار در, در, در خیلی از حیوانم بتر برتر باشه رساله در عملات ها آیشه ابن اخی ها نبیه الام الاعراف اعراب اینا بیاونی ها من منیوسی و ملکیت ها که خیلی باش بر رسایی بکنن از حیوانم بتر برتر و قالت اب تاب ها را قطع فرسغه ها از اون طوری هم که میگیدی بله یک مثلا عبد دیگری بخرید، کنیزی بخرید و اون را بکن. این قسمان مشو عایشه قالب قتل نبوده با اینکه حالا در این روزی که هم شد. روایت دیگه داره که علی یحیی سعید انصاری بله، علی امر بودن. قالت مرضت آیشه فتال مرزها طولانی هم که مرضش به بنواحی ها بله، الی رجله فیا فزهب بنواحی ها بن و اخیه ها فذهب بن و اخیه ها, اخی ها اینجا بس من بسونده بن و اخیه ها اینجا به نواحی ها چاک کردن بعد اخیه ها درست فذهب بن و اخیه ها الى رجل یعنی بشای زرش کسی مراجعه کرد مثلا اول سر کتاب نقوی رمزی فذکر له ما ردا فقال انکم تخبرون انا کاهن ها اینطور بودن خبر امراته محبوبه اصلا صابرن تو بخاری همون محبوب یعنی مشهور تقب و از این ماده. فضله هبوی امرون فالله جاریتون لها قد ها و کاند قد دبرت ها فقالت لها ما عرب تمهنی. چی میخواستی از جانبا قالت عرب رو انتموتی حتی اوتر من آزاد بشن قالت سهن الله علیه انتباه من اشد دل عرب مالک. از افوازی که خیلی با کنیزه ها و با بردگانشون بردفتاری میکنن و اله و ان نبیتیب نقطتا درجلن بددا صحر جایی و کان او بود که سرم کردور کن که بود این برده او دنبال بیفته الى محمد و عامل محمد يعني عرزها و ها و بود که صاحب سون و ها و رزکر ما عثمان انکار صاحب خوبه که خبی کنیدش سهره از سهره نه نه نه سر نه بوده نه نه گرفته ممکن سر باشه اما صاحب نباشه, شغل سهر نباشه. بعد ایشون متعرض تحقیق رو میشه ایشون میگه که نظر ناقول من را قبل از ساهر و وجدناهم یا قلون قال الله و تعالی و تب اماست و, و شیاطین عبامل که سلیمان این و ما کفر سلیمان لکه نشیاطین کفر و علمون ناس هسته. از این آیه هم تو که به این آیت این در کتاب دامور است آمده منصوبن الامیر مومنی خال فسن الله تعالی از سهر کفره به قولی روکه نشدی و ایزا به قولی این ما نحن و فتمه فلا سکر این ما نیموند و ایزا به قولی ایت تعالی و لقد علی مول من اشتراح ما لهمو که لآخرت من خلاف این طور ما هم اگر یاد مبارکتون باشه روایت رو نمکه از عبدالعظیم حسنی از حضرت خادی از جواب در تعداد کبائل یکی سهره این آیه رو ایمان ذکر می کنم. و به قولی ولی به اسم این تو ما نیامده خوب دقت کرده خب بگم, بگم امنحرز سعی کرده مجموعه روایات رو بیاره و آیات رو از این که آیاتیشون عورده دو تا آیه در کتابه ما هم آمده البته باز هم یکیش که خیلی مشکل هم داره و اما از روایات ان اسمایل ابن مسلم اسمایل ابن مسلم این اسمایل всегда سکونی میست ها اسمایل اون مسلم مکیست اصوش بسری بوده رفع مکه غیر سکونی ماست. هست ایشان تضعیف شده بین احربي Sticker faster ان حسن بسری قال قال النبی حد و ساهل اینم ما داریم نخوندیم ته آلا ما داریم ته آلا تو روایتی که بوده نخوندیم باز روایت صحابه ابن مسلم قالوا رسول رسولم من تعلم السحر تعلم السحر قليلا او كثيرا آخر و راحته من الله اخر احد اینم ما داره وانسکر گیدو دقیو یاد ورش باشه شواهد برای اینکه تعلم سر حرامه که در شرایط اوماده تعلم سه یکی چه معنی من تعلم السحر من تعلم باب اینم ما داریم این روایت ما الان ما ده از روایت دیگه ابن ابی الالاء عن رسول الله جان جان در عتبه ذات لیلته فنذره فجعل يرتجز گفتن و يقول جند و ما جند و لعقت و ما الاختر اینجوری اصحاب حسین رسول جند و ما جند یعنی چی اختر از بس که این بله ما به اینا راجزهن اما جندو اول اخر آلا اما جند فرجلو من امتی یک به زر بچن ها عصبها امتان رده و یمر میونه یک به هزار میزنه که خیلی به حساب جندو و اما الاخر فرجلو تو قطع یده فادخل الجنه قبل جسدی به برهت من النار پاش در راه جنگ در راه خدا بریده میشه پاش قبل از اینکه بقیه جسدش بخواد رو پاش میره به برهت من النار این فکان و یران امال اختر کسی که امال اختر لغتر به دست بریده میاد سلیمان بن خازه اختر دستش بریده بود در جریان زید با زید شد و دستش بریده ما فلما اصبن و عمل اختر فرد جلوم برد فکان و یران امال اختر زیرون و این برادر سرفن سوحانه که اسم شیدید آنه که ایام اتراف موش میشه رفن مسجد, و مسجد سهل و بردشم مسجد جدیدی که موجود سیکشید که هست در همون دورور سهله اما در اقتر به سوخان خود او یوم قبل یوم الجمل معلیه در یوم یرموک رو و, و اما جندوق رو بلده قتل از این قتل ساهر در زمان عثمانه این جندو از دیها بوده، از یامر بوده. بوده. حالا یکی از آتمنام، یکی از آتمناتی که فیلم هرگز ما نمیرومونی، چیه ما؟ چی؟ امام علی فیلم ها وای. دلیلی که یک ساهری بود که اون مرتی که میول سخت کرد و یک نفر اون ساهری کش همون جندو بود، جندو وردیه، درسته؟ اما حالا اون کارش اون نبوده، اول جور دیگه نوشته شده. بله بعد لازم به جندو این تونسته. اون ساهرن کنه اندل، وریده نه آب. ولی زبن اقوه فاصله فاصلی بود دیگه اینجا هم خواسته همون به در شعن اون نازم شده ولی زبن اقوه و این والی عثمان برمک کوفه بود همون بود فیش آفردو رو مرس کردی نما صبح چارکت خون که بعدم رفتنم مدینه شلاغه دادن این در وید زبن فجعل یک خلوفی بقر اون میگم در اون فیلم اونجوی نوشته اما این تاریخش اینجویه فجعل یک سهرش این از ذهن گاو داخل میشود بعد از بدن گاو میآمد بیرون فیلم نمایشی که این سازش داشت بکنید که سحر رو به چی مثلا عنوان کرده فراح و دندو این جلدو به از دید فر ذهب الهیتی فلسفه برداشت شمشیری گذانن زیر هواش گذافتن فلان ماذخر از صاحب جوفر بغره رفت یخچال گاو زرد میشه گاو را از اصل نیست کردن هم گاو و هم جلدو با هم دیگه از این رفتن زرده و قال اكعثون السحر وانتم تكذبون بيان اینکه پیغمبر در اون شرطه اون و ما جند اشاره می‌کنه که این یک ضربه عزتیه یو اس امه تن لهدیه یوم الک فصدق الناس و تفرب مردم شوو که سردر شد دیگه مثل اوتا عرف و قالو حروریون این جزء خوارج شد قسمت مثلا زده حکومت جزء خوارج زمان باجاریت مخالفین بابی هست هر زمانی ارمان در میونه قالو حروری ها یعنی جزا خبارجه فسجن حول ولی و خبارج روز آن ازمان نمیدن زان همین ممنی بودن که برده بیگونم هم خود یه حالا هیشون برداشته حروری رو فسجن حول ولی و رضایشون برای میگه گروه ها زریفه و کتبه بیه بن فکان ولی حالا اینه زندان شرم جندو رو شبا میلک خونش بودا میموند زندان فکان یفته لهم به فیل حبوا الى اهلي في الاصفهانه جاء للسيف فقال بيرونن جندبان صاحبزرده این روایت دیگر راجع به سر بر راجع به قتل صاحب دقت کنید من با حالی که داشه همین اینا را عباراتی برای این میراث هایی که اهل سنت داشتن و نحوه استفاده ابن حزم میگه که ما نعلم لهم شیئا غیر ما تمام من ما آوردیم. هرچی استدلال داشت، تا تقصین آه قاید تا تقصی. ازش میگین صحن، با معاصر آسیشش از که در بغداد است و کتاب از انسانی که تو معاصر بودی، خیلی بیشتر آورد و خیلی هم آورد این صحن. و اتینا به ما لمس نکرد و کل دلک دل آورد لا جت لام فی شین من علامانو بین، ان شالله الله. یش استدلال نیست. بعدیه و اما مذاکره او من اقوال صحابه و یک کمی کنی کشیدن خب برای اطلاع از سیر تاریشی یه مسئله و بعض از نکات یه سیلتیفه خوبه حالا اما قول عمر که ها خبران صحیحون هست لیکن میگه این تختیعش کردن این نداشت قبول کردن نداشت نکن بعد خبر رو اینطور طور نهار میکن سمیه تو به جاله کار تیز جزه یو هست تو اول شعص ها و هموه این در صفت زمزم مثل یک تختگاهی بودید رو زمزم که الان بردشانش فی امارت المصابه بن از تاریخی هم کاملا توضیح بده آل پرتو کاتبن در جزه همه احناف بن قیص ساعتا کتاب و اومد قبل موتیهی به سنه در هم تاریخی کتاب رو اولا سال بیست و پنج و او قطلو کل ساهر میگم شواهر دیگه هم داریم که سالا شده میخواستم عجیب راجبه همها به دیرانی که در بخصوردن نوشته و هر فرق بین کل زیره اینه محرم یا محرم من المجوس مثلا میگوستن مجوسی ها خوهرشون ها گرفتن مادرشون گفت اینه تفریم بکنیم جدا بکنی. و نه هم از زمزمه خیلی عجیبه ها هست این مثلا ها، ایرانی ایرانی‌ها زمزمه دارن اینجوری زمزمه را بگیم یکی این چینی‌ها که ازدواجشون با خواهرشون مادرشون جدا بشن یکم زمزم زمزمه واسه دعایی بوده که مجوس شاید حالا هم بخونن زردشتی من اطلاعی به این نحوه خاصی میخوندن یعنی دعای بوده که رو باز نمیکنن زیر لبی به حساب میخوندن در وقت غذا وقت شکر غذا می‌ذاشتن این جور رمز نجوسیات شده جوری سقاطرنا سلاس سوالف سق زن ساحل رو کشتی و سنه که کسی كثيرن بعد قضا درست کرد و عرض از سی شمشیر بردو امیرالمومنین در سود اینطور ثم جعل مجوس فالقو بغله بغله من ورقین غرر یعنی به اندازه سنگینی به اندازه بار یک قاطر یا اثر به اصطلاح اثر ورق یعنی به اصطلاح نغره از نغره عبور حالا اخله هیچ چیزی باد باشه اخله که جنب خلال جمع خل به سرکه سرکه کان و به بها و اکلوا بغیر زنجره گویا شمشیر اونجا گذاشت گفت چون عمر گفته بشه اینجا غذا بخورید بدون زنجره اون دعاهاتون نخورید بله تا بله فها کردن حدیث ایشو میگه والمالکیون بله و الحنفیون یخالفون و و عمر خبر چرا؟ چون لا يحل خلافو من عمری یفرق بین كل زیره محرم من المجوز لعن هذا هو عمر الله صحابه از یقول و انه کن بین هم به معنظر الله صحابه از یقول و قاتلون حتی لا تخمون فتنه کلول الله بله میگه با اینکه عمر این حرف زد که جدا کنیم فقال الهنیفیون و المالکیون لا یفرقو بین یا و بین حریمتی و تو خضال جزیه بین کل من لیسه کتابیم منرعجم فخالف القرآن و خالف عمر عبدالخطاب حیث الله یه حضر خلافه و به زحمه اما گفتن ما حرف عمر رو در صاحب قبول میکنیم بله به ما عده اشتها دو میگه حرف عمر رو قبول میده نظره که دو عمره من مالم یه رفیه قرآن ولا صحت بهی سنتو تو این مسئله که نه قرآن هست نه آیه قرآن هست نه سنت سهی این اشتهاد آمره چطور شد اشتهاد رو قبول میکنن کنم اونجایی که حکم اله و آمر تلامش از قران قرآنه قبول نده کنم فهادا حکس و بعد و زمزم کلام منتزه کنم به این مجوز انده اکله هم لابود دله همه ولا یه و فی دینه هم دونه و الان اصلا بدون اون زمزمه نمیخوره و هر کلام و تعظیم اندالله میگیم دعا و شفر و سپاسگزاری یه چیزی بیست اتکلمون کلمون بی هی فی اطواه هم خلقتن و شفا هم مصبه هم دهانشون بسته بسیار زیر, بس زیر لب میخونن لا یه جوزای انده هم خلاف زاله و لهم خشبات و سغاری چوبای کچیک اندارش هم مثلا چوبا رو به هم میزن نسی صدایی دارن یه از تعملون ها هم انده شاید این اخله جمع خلال باشه، مثل پرشق مانند دیده، اصل این چیزایی خلاله در که جا باشه باش بهنج بخورن. شاید مراد من خل منناکم سرکه شاید مراد اخله یعنی با خلالال ها پاش های بودی دور میخوردن. و حالا هم قول من هم و نک بکن کار سختی چیزی نیست که موجا تع بشه موجه می بشه با اومر این کار این میگه که این مطلب درست نیست که، این یک اشتحال عمر وزه هر نم از جنزه زنده هر بگیره. که اشته دیگه رو صاحب قبرش. این اشتحال عمر وزه که زیربانه و قرآنی و از سنت عندنا و ما هم مطلع ما هم نیست که اعتبار ایشون بکنیم. بعد ایشون داره که عمر باز با سند دیگه با یک سندی که عمر بود اخذ ساهرن را دفن ابو الیلا صدره تو زمین شه زنده زنده سو و ترک و ما و هم لا يخذون باذا با نقشه من حكم عمر فسارد حتی حتى ملتزم قول عمر کله لکانه اذا صح خلاف آیش راو فی ولما کان ولما كان قول و اولاد قول ها را ساده شو عائشه کی عمر قول عمر را قول هاشون قدم باشه ولا لا قول ها من قوله هی. اولا من قوله فالواجب ان رجوع امدر تنازو از رجوع از اللهم از الله و رجوع علیه امدر قرآن و سنه حالا که دید صحابه با هم اختراف کردن عمر یک چیز با آیشی یک چیز باز به قرآن و سنه از برگردی بعد فسقط تعلق هم با عمر بیزاره استوزارشون به کار عمر باطله این راجعه به یه قسمه در